توی درس امروز از کلاس دائمی هیبنوتیز در مورد شرطی سازی با شما صحبت خواهم کرد تا نکاتی رو بشنوید فعلا به صورت ابتدایی درباره اینکه این که شرطی سازی چی هست شاید شنیده باشید که در واقع انکرینگ یا شرطی سازی در واقع توی سایت زیاد مورد بحث قرار گرفته و باید بدونید که یکی از تکنیک های خیلی بنیادی در هیپنوتیزم میتونه باشه اگه شما یاد بگیرید که چطور به خوبی عملیات انکرینگ رو انجام بدید شرطی سازی رو توی گفتارتون توی رفتارهایی که نشون میدید به نمایش بذارید و از اون استفاده کنید اگه بخواید مثال های خیلی سادهش رو بشنوید و در واقع متوجهید که شرطی سازی چی هست به صورت بنیادی قطعا برای شما شده که یه بوی عطر خاصی میاد یه در واقع تصویر خاصی میبینید و بعد یه خاطره قدیمی به فرض براتون زنده میشه یه بوی خاص ممکنه یادآور یه فرد خاص باشه یه شرایط خاص باشه یا حتی توی فوبیا ها دیدید یعنی کسایی که دوشار فوبیا هستن این رو احتمالا شاید بودید که به عنوان مثال ارتفاع یا حتی یه اتاق بسته, یه محیط خاص یه،, یه نوحت پوشش خاص ممکنه یه ترسی رو برای اونا زنده کنه یه وضعیتی رو برای اونا زنده کنه و علتش اینه که در واقع ذهن اونها شرطی شده و به زبون یه ذره علمی توی شرطی سازی شما میایی یک استیت درونی رو یک وضعیت درونی رو مرتبط می‌کنی با یک تریگر یه چیزی که مثل ماشه میمونه یعنی یک صدا، یک صوت، یک بوی خاص یا یک تصویر هر چیزی میتونه باشه و این به زبان ساده میشه شرطی سازی حالا باید بدونید که تسلط به این تکنیک خیلی مهمه مثل تکنیک های دیگه یه که حالا در مورد بقیه از اونها قبلا صحبت کردیم و بقیه ها رو هم بعدا میگیم تسلط شما و قدرت اجرای شما خیلی مهمه که بتونید توی زمانهای مختلف افراد رو یا حتی خودتون رو شرطی کنید نسبت به یه سری مسائل مثلا شما ممکنه یه نوع لباس خاص رو برای خودتون شرطی کنید که شما سریع به سطح انرژی بالا ببره ممکنه شما خودتون رو شرطی کنید که یه نوع خاص راه رفتن یه نوع خاص حرف زدن یه انرژی خاصی رو در درونتون ایجاد کنه و در واقع توی انکرینگ ما میایم دگمه های احساسی رو تعریف می‌کنیم. یه سری دگمه های احساسی برای خودتون یا فرد مقابل که بعد همیشه از اونها استفاده کرد و در واقع اول از همه شما میتونید فرد مقابل رو به سطح خاصی از هوشیاری به حالت احساسی خاصی ببرید و بعد مثلا درخواستی رو ازش داشته باشید که در واقع توی این حالت شما احتمالا مثلا پیشبینی کردید که توی فلان وضعیت توی فلان حالت مثلا خوشحالی یا فلان استیت خیلی خاص ممکنه این آدم خیلی پذیراتر باشه و حرف من رو بپذیره این میشه مقدمه خیلی سطیه مثال مثالهاش و توضیحات بیشتر رو هم خدمتون عرض ارز خواهم کرد